افثانه هایی از خواهد دور ژاپن ترجمه اردشیر نیکپول ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسانه سوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سما مهربان این داستان سی میلیون و سی, و سی و هزار و, سی و, سی و روزی روزگاری در دهکتی پدری سه پسر داشت پسر بزرگتر و پسر دوم فعال و پرکار بودند خوب و سریع کار میکردند و لحظه بیکار نمی نشستند وقتشونو بیهوده تلف نمیکردند همه روستایی ها اون دو برادر رو به چشم تحسین نگاه می‌کردن و می‌گفتن که اونها در آینده روستاییای خوب و می میشن. اما پسر سوم که جنیروکو نام داشت با برادرای خودش فرق زیادی داشت. نه این که تنبل یا بدخو باشه، نه هیچ هم نه تنبل بود و نه بدخو. اما شیفته داستانهای شیرین بود و وقتی به داستان و قصه جالبی گوش میداد چنان ششدانگ حواسش متوجه اون میشد که کار خودش و پاک از می میبرد هر وقت گروهی از هنرپیشگان دورهگرد به دهگده میومد جنیروکو آخرین دیناری که در خونه پیدا میشد رو میداد تا جای خوبی برای تماشا و گوش کردن قصه پیدا کند هر وقت پولی توی خونه پیدا نمیکرد، هر چیزی که به دستش میافتاد میفروخت تا به دیدن نمایش بره پدرش بیهوده در خونه رو به روش می و زندونش می جنیروکو همیشه راهی برای گریختن پیدا می کرد. و به سوی رودخونه که هنر پیشه های دوره گرد چادورای خودشون در مسیر خشک اون می زدند چون جای خوبی برای نشستن پیدا می کرد و نمایش آغاز می شد چنان گوش و هوشش متوجه صحنه نمایش می شد که حتی خودش هم فراموش می کرد تو مسیر بازگشت به خونه به و آفرین از دهنش نمی افتاد. به سرزنش های پدر و ریشخنده دو برادرش جوابی جز این که شما هم میومدید میدیدید چه داستان شیرین و دلنشینی بود من باید اونو برای شما تعریف کنم اما حیف حیف که من نمیتونم به خوبی و شیرینی قصه اونو تعریف کنم بعد با آرامش و بیخیالی تمام لبخندی روی همه میزد و فکر نمیکرد که تا چه حد دیگران رو خشمگین کرده پدرش اغلب میگفت نمیدونم آخر آقابت جنیرکو چیخ میشه. اون جوون مهربانیه دست و دلبازه هرچی داره خرج میکنه برای شنیدن یه قصه شیرین. برای شنیدن یه قصه حاضره حتی آخرین پیل هم بفروشه سالها سپری شد پدر پیر شد و روزی فرزنداش رو پیش خودش صدا کرد و به اونها گفت پسرای عزیزم حالا دیگه شما به سن سالی رسیدید که بهتر قبل از اون که زندگی مستقلی برای خودتون ترتیب بدید برید و دنیا رو بگردید خودتون فکر کنید و تصمیم بگیرید که کجا برید و بهتنی راهی که به نظرتون میرسه و انتخاب کنید من مرد پولاری نیستم اما مقدار پول پسنداز کردم و کنار گذاشتم که اون رو به تصاوی بینتون تقسیم میکنم تا برای شروع مسافرتتون چیزی داشته باشید. آرزو میکنم توی این گشت و گذار بخت و اقبالیارتون باشه و با تنی درست و سالم دلی شاد و خورم به خونه بازگردید. پدر برای هر کدوم از سه برادر سه سکه داد تا خودشون رو آماده رفتن کنند. برادرها بار سفر بستند و کفشهای محکم به پا کردند و پشت به و رو به راه با هم زیر عبرهای سفید پا به راه نهادند تا به سر یک سراهی رسیدند در اونجا برادر بزرگتر ایستاد به دو برادر کوچکترش گفت برادرا گوش کنید ما باید روزی از هم جدا بشیم چرا همین الان جدا نشیم از اینجا هر کدوم از ما همونطور که پدرمون گفت باید راهی برای خودش انتخاب کنه دو برادر کچکتر پیشنهاد برادر بزرگتر رو قبول کردند. هر سه به همدیگه سفر به خیر گفتن در برابر هم ایستادند و تعظیم کردن و اون وقت برادر بزرگتر در جاده سمت چپ رو و برادر دوم راه دست راست رو و برادر کوچکتر راه روبرو رو گرفتند و به مسیرشون ادامه دادند جنیرکو آواز میخوند و پیش میرفت و از همین حالا به فکر چیزای دیدنی و جالبی که توی مسافرتش میخواد ببینه و بیش از اون به فکر داستانای شیرینی که یقین داشت در جهانگردیش خواهد شنید غرق شادی و لذت بود راه اودم بدم سختر شد خورشید کم کم در افق مغرب پایین رفت و سرانجام ناپدید شد در این موقع در جنگلی راه میرفت من رسیدن به نزدیکترین دهکده سر راه خودش باید از روی کوه بزرگی میگذشت. اون هنوز تجربه کافی نداشت با خودش گفت در جنگل چه اتفاقی ممکنه برا من بیفته؟ من سیر درخت بستری برای خودم درست میکنم و شب و همینجا می گذرونم. اون تازه در بین برگای خشک دراز کشیده بود تا سردش نشه که به خوابی عمیق فرو رفت تنها موقعی بیدار شد که اولین پرتوی خورشید از بین شاخ و برگ درختا به روش افتاد هنوز چشماشو درست باز نکرده بود و خوابالود بود که شنید یکی در نزدیکی اون ایستاده و میگه خواب بسه زود باش بلند شو پاشو سپونه بخوریم و راه بیافتیم دنی رو که شد و نشست و پایین پای خودش دوکی دادید که کنار آتشی چونبات مزده بودن یکی از اون دو رو بهش کرد و گفت ما دیروز از این جنگل میگذشتیم که شب شد در جستجوی جای مناسب بودیم که شب رو به روز بیاریم تو رو دیدیم که بیخیال روی سبزه و گیا خوابیده بودی حتما تو خیلی بی تجربه و اونا آزموده ای که اینطوری تک و تنها تو جنگل خوابیده ای و هیچ فکر نکردی که ممکنه جانوری درنده بیان و تک پارت کنن؟ ما تو این ما اینجا موندیم که مراقب تو باشیم. تو تمام شب رو مثل بچه شیرخاری خوابیدی حتی متوجه آتیش روشن کردن ما هم نشدیم. گدایی دوم به گفته همراه خودش اینطور اضافه کرد. بله ما با هم گفتیم که جوانی چون تو بعد از گزروندن شبیه این چنین سرد حتما خیلی هم خواهد نخواهد بود بنابراین مقداری برنج پختیم. بیا بشیم پیش ما برنج بخور وقت با تو یار بود که ما تو رو اینجا پیدا کردیم نه جانورای درنده وحشی رو بعد کاسه برنجی رو به چنرکو داد چنیروکو که نمیدونست چطور از گداها سپاسگزاری کنه گفت شما راستی خیلی خوبید میدونید پدرم در موقع حرکتم سه سکه به من داده حالا که ما سه نفریم اونها رو بین هم تقسیم میکنیم به هر کدوم از ما یه سکه میرسه بله فکر خوبیه که به سرم رسید جوون بعد از اینکه با خوشرویی و مهربونی تمام این حرفها رو به دو گدا زد بخچش رو باز کرد و دستمالی از اون بیرون آورد که سه سکه نقره رو توی اون گذاشته بود و با دقت بسیار گره زده بود گدا ها به حیرت رو نگاه کردند چون دیدن که مرد جوان شوخی نمیکنه و اونها رو دست ننداخته از خوشحالی جست و خیز افتاده یکی از گداها بهش گفت ای جوون غریب تو قلب مهربونی داری و هدیه ی تو بیگمان برای ما مایه شادی و خوشبختیه اما ما نمیتونیم اون رو از تو بپذیریم و چیزی در عوض به تو ندیم ما هم هدیه‌ای به تو میدیم که با اینکه به نظر خیلی کوچیک میاد ممکنه روزی به دردت بخوره اون سوزنی به جنیرکو داد و گدای دیگه هم نخی رو به اون داد گدای اول به جوان گفت خیال نکنی یه سوزن معمولیه نه این سوزن هرچی رو که تو بخوای میتونه سوراخ کنه و بدوزه گدای دوون گفت نخم که من به تو دادم نخ معمولی نیست تو میتونی با اون هر چقدر که دلت بخواد یخت و دوست کنی و نخش هیچ وقتمون نمیشه جنیروکو از دو گدا به خاطر هدیه که به او دادن سپاسگذاری کرد بعد از خدافزی از اون دو راهش رو پیش گرفت راه اون از کوههای بسیار بلند با شیوی بسیار تند، از میان آبکندهای گود میگذشت روزی در دره تنگ به پیرمرد کوچیکی که پشتش از پیری دوتا شده بود برخورد. پیرمرد کلاهی به سر داشت که با مفتولهای زر بافته شده بود. بالاپوشی به تنگ کرده بود که بر اون گل‌های بزرگ رنگارنگی سوزندوزی کرده بودند و کفشهای صندل زیبایی از جنس رافیا به پا اما عجیب تر از هر چیزی صورت اون بود چون صورت اون به قدری سرخ و سفید و صاف بود که اصلا با قدر خمیده و ریش سفید بلندش هماهنگی نداشت پیرمرد کیسه بزرگ کهنه دوش داشت و چنان چست و چالاک راه میرفت که از پیری چون او باور کردنی نبود او با دیدن جنیرکو که با گام های آهسته و آرام پیش میرفت، ایستاد منتظر شد و وقتی جوان روبروی اون رسید، پیرمرد به دقت براندازش کرد و بعد به لحن دوستانه بهش گفت: خب، پسرم، من از قیافه تو می فهمم که تو علاقه زیادی به شنیدن داستانهای شیرین و جالب داری. جانی روکو که امیدوار شده بود داستان جالبی خواهد شنید، به خوشحالی پاسخ داد بله بله پدر بزرگ من داستانای شیرین رو بیشتر از هر چیزی دوست دارم پیرمرد گفت خوب پس خودتو هم یقین میتونی به طرزی جالب و دلنشین داستان سرایی کنی جلیوکو خیلی افسرده و غمگین شد چون اون نمیتونست به طرز جالب داستان سرایی کنه در جواب پیرمرد گفت پدر بزرگ شما اشتباه می کنید من نمیتونم داستان سرایی کنم من داستانهای جالب و دلنشین زیادی شنیدم اما هر وقت خواستم داستانی نقل کنم خودم از خستگی به دهن در افتادم پیرمرد سرش رو با تاسف تکون داد گفت خیلی متاسفم چون در پس این جنگل امیر یا امیر اون شیفته قصه های شیرین و دلکشه اون قلاده دخترش رو به کسی بده که بتونه باور نکردنی ترین داستان رو برای اون نقل کنه اما قصه نخود من تو رو راهنمایی میکنم من قصه فروشم دلت میخواد یکی از قصه های منو بخری؟ جوان پاسخ داد البته پدر بزرگ با کمال میل اما هر داستان چقدر قیمت داره پیرمرد سری تکون داد گفت متاسفانه همه داستان های ارزونم و قبلا فروختم حالا بیشتر از یه داستان در کیسه ندارم که گرانبهاترین داستانمم داستانم هم هست و قیمتش یه سکه یه نقره است اما این داستان واقعا جالب ترین داستان منه جنرکو خوشحال شد گفت دقت و اقبالم که بلنده هنوز یه سکه نقره از پولهایی رو که پدرم برای خرج راهم داده بود رو دارم اما بلا فاصله اضافه کرد اگه اونو به شما بدم دیگه دیناری برام نمیمونه پدر بزرگ عقیده شما تو این باره چیه؟ آیا این داستان برای من خوشبختی میاره؟ پیرمرد مرد اونو مطمئن کرد و گفت که نباید غمی به دل خود راه بدید. چون داستانی که یک سکه نقره ارزش داشته باشه بیگمان ممکن نیست که آرزوی اونو بر نیاره. به این ترتیب معامله انجام گرفت. جنیروکو آخرین سکه نقره خودش رو به پیرمرد داد و پیرمرد مرد که سر و بلند کرد و اون رو نزدیک گوش جنیروکو برد و به گوشش فشرد. زمزمه آهسته برخواست و داستانی که در تای کیسه خوابیده بود به گوش جنیرکو رفت پیرمرد مرد کیسه رو تا کرد و در جیب خود گذاشت و از مرد جوان پرسید آیا از داستان من خوشت اومد؟ جنیرکو شگفت زده سری تکون داد و پاسخ داد راستیم هم داستان شگفت انگیزیه بعد در برابر پیرمرد سر خم کرد و به سرعت به سوی شهر که کاخ همه در اون سر برف راشته بود دوید. در راه چند بار سکندری خورد و زمین خورد و زخمی شد چون اصلا پیش پای خودش نگاه نمیکرد و فقط سرگرم شنیدن داستانی بود که توی سرش جا گرفته بود. و اون سرانجام خودش رو به کاخ امیر رسوند. جنی در بزرگ کاخ امیر رو زد نگهبان پرسید کیست جنی گفت من جنی روکو هستم بهترین داستان رو که در تمام ژاپن پیدا میشه میدونم و میخوام اون رو به سرور شما امیر این شهر نقل کنم جنروکو رو به کاخ وارد کردند و پیش امیر بردند امیر جوان غریب رو به این گونه خوش آمد گفت که به من گفتند که تو داستان شگفتانگیز میدونی زود اون رو برای من نقل کن تا درباره ادعای تو داوری کنم و بگم که راست میگی یا مردی نیرنگ بازی میدونی که پاداشش چیه اما اگه با داستانه منو خسته بکنی و حوصلم رو سر ببری میدم سرت رو ببرم خب شروع کن جنی که با شنیدن این سخن چنان ترسید که به وصب نمی اما دیگه دیر شده بود او نمیتونست برگرده و از اونجا فرار کنه بناچار به نقل داستانی پرداخت که از پیرمرد خریده بود شروع کرد یکی بود یکی نبود در زمانهای بسیار قدیم درخت بلوتی بود درخت بلوتی چنان بزرگ که مانندش در زمان ما پیدا نمیشه شاخه هاش از شهر اچیکو تا جزیره سادو کشیده شده بودند دوره تنش سیسد و سی و سه هزار متر و سی, و سی سانتی متر بود امیر به حیرت گفت عجب درختی راستی که درخت شگفتانگیزی بود جنیروکو که تعجبی بکنه ادامه داد اما این درخت بلود تنها بینهایت بزرگ و تنومند نبود بلکه بینهایت بلندم بود به ارتفاع سی و, سی و سه هزار مترو امیر دوباره سخنش رو قطع کرد و گفت بلندی این درخت رو چطور فهمیدی؟ مگه تو خودت اونو اندازه گرفته بودی؟ جنیروکو گفت من خودم اونو اندازه نگرفتم اما باید بگم که صدیق این درخت در جهان دیگر بود و در اونجا مردی زندگی می کرد بی نهایت کنجکاف. که این درخت کنجکاوی اونو برانگیخت روزی روی یکی از شاخه درخت رفت و شروع کرد به پایین اومدن سالها طول کشید تا تونست به انتهای شاخه برسه و تو فصل پاییز یک سالی بود که به اونجا رسید همچنان که روی درخت حرکت می کرد میوه بلوت رو یکی بعد دیگری روی زمین مینداخت یکی از اون میوه ها روی پرستشگاه سنگوچی دوستان شمال افتاد دومی دو رو دهانه کوه نامدار آتشفشانی ما فوجی سه ومی دریاچه بیوا در جنوب خب خب فهمیدم بعد چی شد جنی رو کوه ادامه داد بعد بلوت دیگری در جزیره شیکوکو روی زنگوله زائر که از پرستشگاهی به پرستشگاه دیگه میرفت افتاد و زنگوله شروع کرد به زنگ زنگ زدن و زائر بیچاره از صداش ترسیم پنجم بلوت باز امیر سخن جنروکو رو قطع کرد و پرسید درخت روی هم رفته چند تا بلود داشت جنروکو بیان که آرامشش از دست بده گفت خیلی زیاد درست سه میلیون و, و سی و سی سه هزار و سی و سی و سه بلوت روی درخت بود و هر کدوم از این سه میلیون و سی سد و, و سه هزار و سی و سی و سه بلود داستان خودشو داره امیر بناباوری پرسید تو چطور تونستی این همه بلود رو بشماری. جنی در برابر این پرسش دیگه جوابی نداشت که بده چون اون میتونه استر درباره هر کدوم از بلوتا داستانی نقل کنه اما توی هیچ کدوم از داستانهایی که کیسه در گوش اون زمزمه کرده بود گفته نشده بود که بلوتا چطور شمرده شده بودند خوشبختانه جنی درست توی اون موقعی که با خودش فکر میکرد باید بادش آماده کنه که با دشخین به قد بره یاد هدیههایی افتاد که دو گدا به او داده بودند گفت ای امیر بزرگوار شمردن اونها برای من بسیار ساده بود چون همه اونها رو با سوزنی سوراخ کردم و بنخ کردم و شمردم این دیگه برای امیرم باور کردنی نبود از این رو سخت خشمیر شد و فریاد زد چه حرف احمقانه ای در دنیا نخی پیدا نمیشه که به قدری دراز باشه که حتی بشه یک میلیون بلوت رو با اون بنخ کرد در این لحظه جنیروکا از جیبش سوزن و نخ و بیرون آورد و اونا رو به طرف امیر گرفت و گفت امیر بزرگوار این سوزن اینم نخ اگه حرف منو باور نمیکنی حاضرم همه گلای باغ شما رو به طریقی که گفتم بشمارم. بعد سوزن و نخ رو از پنجره روی های قرق در شکوفه باغ انداخت. و همین لحظه صدای وحشتانگیزی از باغ شنیده شد. بدون مال این صدا، هموندم صدای خفه‌ای چون صدای افتادن چیزی سنگین بلند شد. همه اونایی که اونجا بودن هراسون به سوی پنجره دویدن که ببینم چه اتفاقی افتاده زیر درخت گیلاسی که غرق در گل و شکوفه بود راهزنی وحشت زده از پا در اومده بود سوزنی که جنیرکو از پنجره بیرون انداخته بود تو قلب راهزن که بین شاخه های انبوه درخت پنهان شده بود فرو رفته بود و از درخت پایین انداخته بود اون مرد راهزن وحشت انگیز سالها پیش مردم سراسر اون ناهیه رو به وحشت و اضطراب انداخته بود حتی امیرم از اون وحشت داشت علا کوشش هایی که به کار برده بود امیر نتونسته بود دستگیرش کنه اون روزم اون راهزن اومده بود که وارد کاخ بشه و امیر و همه افراد خونوادش رو بکشه اما سوزن جنیروکو شرع اون رو برای همیشه از سر مردم کم کرده بود امیر برای نشون دادن حق شناسی خود دخترش رو به جنیروکو داد و به این ترتیب کوچکترین برادر در سایه دل پاک و علاقه به داستانای دلنشین، تونست به خوشبختی برسه عزیزای شنونده امیدوارم که از داستان امروز لذت برده باشید. خدا نگهدار.